این سوال زیاد میشه که ما چه بکنیم رزقمون یه ذره بیشتر بشه دو داریم کار میکنیم خانممونم کار میکنه ولی همطور گریفتاریم گاه اینجوریه ظاهرا این سوال باز از امام صادق علیه السلام کردن حضرت فرمود که از زنبو یهرمون عبد از رزقه گناه هستش که معمولا رزق بندگان خدا رو کم میکنه و انسان رو از رزق الهی که خدا در اختیارش گذاشته و برایش قرار داده محروم میکنه